همون, و همون که ما مثلا میگیم نوشابه و اون چه ما در فارسیش میگیم شراب خمره میدونید که ولی در فارسیش میگم شراب حال در قران خمر آمده برای شراب و کلمه شراب هم در قران آمده به معنی آشامیدنی نه به معنی اون مشروب الکلی به هر صورت می یا شراب به معنی به معنی آب انگور تخمیر شده رو در حافظ آمده بعضی گفتن که آبا این اصلا اصطلاح است. و در اصطلاح عرفان می به معنی اون حال جذبه و اون حال است که به, به آره و به سالک دست میده در احوال معینی که اول هم میگوین که این حال جذبه خیلی مختصره و خیلی کوتاهه و بعد ممکنه است که دوامش زیاده بعضی هم گفتن که نخی این همون آب انگوره که در میکده ها می فروشند و این مطلب دقیقا همین جواب این است که حافظ اول 20 سالش بوده، بعد 30 سالش شده، بعد 50 سالش شده، بعد 60 سالش شده و در تمام این مدت مرد جستجوگری، یعنی ذهنش کار می دنبال مسائل بوده حاپ ان جوونی حتما به حافظ مردی نبوده که اصلا حاضر نباشه بشه این قضیه چی یعنی که اگر این بود حافظ نمیشد بزرگان ما همه بازشون سریحاً اظهار کردن صنایی میگه بهر سرشربتی خوردم مگیر از من که بد کردم ساری میگه شراب بهر سرشربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استثقاف ارض کنم که حافظ هم بسیار جاها اشاره داره سریحن به آب انگور میگه روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازه میگه می خوردن روز دل تاریک میکنه شراب جذب الهی که دل تاریک نمیکنه آن زمان وقتمه یه صبح فروغه است که چرخ گرده خرگاه و افق پرده شام اندوزه یعنی شراب شراب بخور روزم دو مال کارت باشه خیلی. این این نمیشه هیچ نحوی تعبیر کرده اون حال وجذبه اون از طرف دیگه در همین بیت در همین غزل ملاحظه میفرمایید میگه خمها ها همه در جوش و خرم چند زمستی وان می که در اونجاست حقیقت نه مجاز است مه حقیقت هست، مه مجاز نیست بنابراین این می مه،, مه آب انگوری نیست سریعن و بسیار جاهای دیگه باز داره میگه می کشیم از قده لاله شراب موهوم، چشم بد دور که بی مترب و می مدروشه اینجا روشه، وستی عشق نیست در سر تو رو که تو مست آب انگوری من ها این حافظ ظاهرن، در یه روزگاری از عمرش، در جوانی، در دوران هوطناکی، گفت بس طور عجب لازم ایام شباب است در دوره جوانی، قطمان چشیده بوده می رو. و بعد هم قطعا همونجوری که خیام که این همه دم از می پرستی میزنه به طور حتم آدمی نبوده که هر شب جنازهشو کول کنن وردنن ببرن، تلو تلو و کارو. چون کشتی و بیلنگر کش میشد و, و شد و برم اون زن در خیمهش اگه بود خیام نمیشود اما در این حال اگرم نچشیده بود این رو بازم بازم خیام بر شعر حافظم هم تو هر دو اشاره شده و تأثب بردیدنه درباره اینکه نه حتما اینه یا حتما اونه اصلا صحیح نیست با من یک کلمه بگم از یه مردی که مثل که اسمش آقا محمد رضای گمشهی بوده، عارف بوده و فیلسوف بوده از و فیلسف الاهی بوده از و مرد عرض کنم که توی اون عوالم عرفان و عشق و از این حرفا بعد پرسیدن ازش که آقا مه دو ساله و محبوب و چهارده ساله یعنی چی؟ در زمیتون بگم که مثلا گفتم که محبوب و چهارده ساله پیغمبره برای اینکه چه ده سال میشه چه سال و پیغمبر در چه سالگی گی پیغمبری مبوب شد. آموززار گمش قمشهی گفته است که به همون قرآنی که حافظ در سینه داشته می دو ساله آب انگور است که دو سال ازش گذشته باشه محبوب و چهارده سالم دختر سیبا و چهده سال من نمیدونم حافظ چه مرگشده که از نبلش حالا با هم قضیه اینه. یه روزی بوده است اون زندگی رو داشته اون وضعو داشته روز دیگری هم عین همه ماها که این مراحلی که ما گذروندیم این یادمون میره یک کتاب می‌بینیم خیال می‌کنم این حافظ زردار در در دو ساعت نوشته می‌کردیم تناقضات چیه آها تناقض نداره یه روزی جوون بوده یه حرفای دردی بود دیر بوده صدکی گفتم ما, ما... منطقه ما شانس هم شانسمون اینقدر یاد داش نکردی شاعر این کارو کردی این هم شراب مجازی هست هم شراب حبیبی هست همه انگوری هست همه پیر انگوری هست در دیوان حافظ و اینا رو میشه به دقت از هم جدا کرد یک دوم اینکه اصل ارز... در واقع بل بل اینکه گفتین میگه حافظ بیت جواب معنی حقیقی میگه آب انگور و نه خیلی پس می مجازی رو شما چی میگیریم؟ اون رو جذبه الهی میگیریم؟ میگه وان می که در آنجا حقیقت نه مجاز است یعنی مهی در معنی حقیقی خودش اگه معنی حقیقی باشه بعد اون یکی میشه معنی مجاز هم. درست میشه این؟ یعنی مهی به عنوان حالات جذبه میشه معنی مجاز؟ یعنی در معنی حقیقی خودش نه نه نه میه حقیقی اون است که سرمستی واقعی بده، می مجازی ده. اصلاً تمام آدما رو، تمام هستی رو تمام آدما رو میگن اینا نمودن، نبود. خود وجود آدمی رو میگن اصلاً نیست. یه یه یه یه مثال، یه نمودی. چه برسه شرابش که نیم ساعت و, و حالش خوش می‌کنه، آدم نه. نه خیر، من فکر می‌کنم ولی به هر حال در هر صورت چه این باشه چه اون باشه که من سر نظر خودم ایستادم باز حرف من ثابته برای اینکه مراد این است که حافظ یکی، اون چرا آب داشت یکیم این رو با هر دوش در دیوانش هست، اینکه چرا من پس می‌کنم؟ من که... قبلاً می‌گفتم اون چرا به نظر می‌رسد که اونجا که می‌روه به معنی آب آن دست خودم می‌آیم، معنی حرفیه می‌روند. نه، نه. نه. من در نظرم درست، عکس نظری که ماست و علتش همینی که عرض کردم. که اون اون عالم معنا رو عالم حقیقت میگیرن و اصلا عالم ظاهر رو که ما به چشم میبینیم عالم مجاز می و اگه اون می رو بگیم یه حقیقت بنابراین اینه حال جذبه رو که تمام اساس تربیت عرفانی بروس باید بگیرین مجاز این درست ها شما یه طرف رو میبینید اون یه طرف دیگه اش نمیبینید اون یه طرف دیگه چکار میکنی؟ فکر میکنم مثل مثلا کلمه شیر رو وقتی به معنی اصل خودش فکر کنیم بنده حقیقی نه مسئله معنی معانی بیان و مطلب معانی بیان معنی حقیقی معنی مجازی که در دستور و معانی بیان میگن غیر از معنی حقیقی و مجازی در ارقان میگن اینا دو تا است در اینجا وقتی حقیقت میگن حقیقت به اون معنی به معنی ذات حق اصلا و اون مسائل اصلا این این جنبه دستوری معانی بیان و معنی حقیقی و مجازی که اونجا میگن غیر از این نظریه است که اینجا هست و در همه مسائل هم به هر کنم که مهدب دیگری که اینجا میخواستم بگم درباره باروی هم دیده چون باز از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. میدونی که باز مرغ شکاری و مثلا برای اون خانه لرستان آقای شجاکور شاید اینا اصلا تازیگی نشته باشه یه ذرن خیز باشه ولی مرغان شکاری که میگرفتن و میبردن چیکار اینا وحشی بودن دیگه بعد اونجاشون می‌گرفتن، می‌آوردن و بعد عادتش می‌دادن به صدای توفنگ، به صدای اسب، به صدای شیهه، به سر و صدا، به داد و فریاد و این اصلا در سقوط زندگی کردون هیمون برای اینکه رم نکنه، اول چشمش رو می‌دوخته. درست باشه تو ذهنم. چشمو این بعد های کلاهکی می‌ذاشتم سرش. برای اینکه باز چشمش جایی نره. بعد اومد تبل میزدن و می میزدن یه تبل محصوصی به نام تبل باز اینی که مولانا میگه بشنیدم از هوا یه تو آوا یه تبل باز باز آمدن که ساید سلطانم آرزید این تبل باز یه چیز کوچولی بود نظیر این تبلک که بچه ها داشتن که دو تام زایده بهش بود اینجوری میکردن این صدا کرد و صدای رفتن و صدای برگشتنش رو باز می‌شناد و صدای بازگشت می‌زدن، بر میزشن. بعد از اینکه این چیز اینو می‌دوختن چشمش رو، این دیگه آجاز بود، جایی رو کنه می‌کردن سرصدا می‌کردن و گرفتاری و بعد از اینکه یه خوده صدا و صدای عصب و صدای طاقت رو این عربا عادت می‌کرد بعد کم کم اون کلاه‌های کشم باز می‌کردن و کلاه‌های می‌ذاشتن بزاییش که هر وقت می‌خوان بشه. بعد اون به ترتیب خورده خورده اینو پرش میدادن برای اینکه یه جوجه کبوتر یه چیزی رو بگیره و محض اینکه این رو میگرفت این رو میعوردن اون سرش مغز او رو به عنوان توفه بهش میدادن کمتر خلاصا عادتش میدادن به شکار و بعد به جای میرسد که دوگه چشمش هم که باز بود و کلاه های که از سرش بر میداشتن بود رم نمی‌کنه از اون صدا بعد وقتی ببرن به شکار این پادشاه یا اون امیر یه چیزی این روی دستش روی آستنش بود که از آهن بود یا از چوب بود یه چیزی برای این این پنجه باز زخم میکرد نجور میده مثلا پنجهش به قدر قویز که وسط این دوتا ناخونش گردن کبوتر یا کب میگیره تکون میده سرش بیپره و به من نمیدونم مقتدره یا نمیدونم که این چه اثری داره این حیوان وقتی که میرسه به کبوتر و یه تنه‌ی کوچولو می‌زنه به کبوتر باور کردیم، مثل اینکه کبوتر یه توده کاهی و پخش تو هوا تمام برای این کبوتر می‌رسی از سر تا با هر چه پر به تنواز می‌رسی نبینه از, از حتما از ترسه به هر حال، برد می‌گیر و میخورش. به هر جهت، باز، دیده‌ش دوخته، وقتی هم می‌خوام برن شکار، بلاحک سرشه تو دست پادشاه یا هر کسی هست اینجا روی اون آهن یا اون چیزی که اونجا هست بعد فرماشش از سرش بر می پرواز میشه برای گرفتن کعب کو اینا اینکه صد تا کعب به محض اینکه باز رو واسه شد همشون همهشون پنامون فناوندن به یک دوشه سوراخی که کن از جاشون نمیخورن با شکارچی میره دونه دونه اینا رو به خاری از اون لامی می‌کشه بدون اینکه اینا مقاومت کنن میروزه تو کیسه و میره. می به هر حال باز دیدش دوخته است باز کلاه بر سرش میذاره حافظ میفرماد که باز از چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی کلاه بر سر گذاشتن کنایه از پادشاهی کردن و اصلا مردم عادیش وقت کلاه سرشون نمیشنید که کونهی واسلا دور سرش کلاهدار حتی اقل کارمند دولت و رئیس اداره و وجوب بود و بالاترینش هم پادشاه بود به هر حال بعد کلاه داشتن یعنی پادشاه میگه بازر چه گاه گاهی بر سر نحت کلاهی یعنی گاهی به عنوان سلطان پرندگان شناخته میشه مرخانیقاف دانند آین پادشاهی پادشاهی هر پادشاه هر کی پرندگان سیمرغ نباز این اساسش و درباره این مطلب درباره کلاه باز درباره دختن دیده باز درباره تبل باز و هم درباره کلمه باز به معنی مرغ شکاری و باز به معنی باز بودن درد و باز به معنی پیشاوندی که نشان تکرار اینا همش یه جوره ما اینا بازی بسیار کردن چورا اینم میخواستم عرض کنم حالا داستان مرغان شکاری بسیار زیاده که من الان چه نمیتونم بگم قما هست میگم عقاب هست بعد مرغان مردارها هست مرغان شکاری است گوشت میخورن ولی شکار زنده نمیگیرن مفصله من اینجا بحث نمیتونم بکنم چون وقت کلاس برای این کار کافی نیست میذاریم برای بعد هرسمونم که در دوختن، بر دوختن دیده چه باد از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبایی تو باز هست. در کعبه کوئی تو هران که در آید هست قبله عبروی تو در این نماز است. میدونید که ما مسلمان ها در هر جای دنیا باشیم باید روبه کعبه نماز هست درسته؟ این مطلب در یک جا بستثنان دارد. اون یک جا در خود خانه کعبه است. از هر طرف که بایستید رو کعبه دیگه یعنی یه, یه مکعب اون این مر واقعی قبله است، اون مر واقعی شمال واقعی قبله جنوب واقعی قبله در هر جا نیرون که رفت یا تو شهر خود شهر مکه، ممکنه پشت به کعبه باشه، ممکن رو به نمیشه. ولی در خونه کعبه رو به هر طرف واقعی اونجا کعبه است. اینه که میگه که هر کس در کعبهه، توی تو در آمد، یعنی هر کس به وصال اینم نشونه این است باز که ق قذل است. در کبه کوه تو کسی که درآیت یعنی هر کسی رو که اون بارگاه واس راهش بدن از قبله ابرووی در عین نماز <تصفيق> لازم نیست که اون تشربات رو جابیره خودش در حال نماز. راجع به خط و خال و چشم ابرو و, و زلف و نمیدونم لعب و دندان و این صحبت ها، و این که اینا چه اشارات عرفانی هست رجوع به فرمایید گلچن شیخ محمود چهرستری و اگر اون کتاب براتون یه قدری مشکله در پایان در آخر کتاب تاریخ تصبح در اسلام مرحوم دکتر غنی یه لیست مختصر کوتاهی داده است درباره و هم تعریفات میرسد شریف جورجانی که اصلا راجع این مسائله و هر کدوم از این فرهنگ های عرفانی مثل فرهنگ اصطلاحات و عرفا و متصفیفه سجفر سجادی که سه چار جل چاپ شده تو هر کدوم اینا بگردید این مطالب هست یعنی تازگی نداره چیزی مهمی نیست که بنده اینجا ازش عرض میبرشون عرض کنم که دیگه عرضی نیست اینجا این این قسمتی که او به کار میبرن حافظ یا به کار میبرن به جای حافظ آیا همه جا مجازه او رو ما در هم در مصرف میکنید در حالی که مثلا میشه همینجا میشه اگر اشتران آن هم به کار این مسئله سب در قدیم او رو برای غیرزی روح هم به کار میورده و کم کم هرچی جلومیاد این مصرف کمتر میشه ولی او و آن هر دو برای غیرزی روح به کار میورده بسیار و از این جهتش مرد و ایرادی ندارید بقید خب، ارز کنم که این مولا آقای سفند آقای بوستانی شما لط میکنیم اگرچه باده فرحبخش و باد بلویزه است اگرچه باده فرحبخش و باد بلویزه است به بانگ چند مخور باییم که محتصر تیزه است عقل نمیشه یا که تنیزات در آستین مراکات پیآور به تاخذ کنیم که آن چشم که زبانه زوابه کمیزند برای به واوی به شویی و در آتش که موصب برای و روزگار تبرکین زن است سفره بر شده فردیزنی است سفره بر شده است دو درشان کلیزه اش سر کسرا و تا به و... پردیم؟ سر کسرا کسرا، محرر حسرو حسرو لغب ساسانی بوده، محررش بشه کسرا و قیصر، محرر کایزر لغب پاتشهان رومه کسرا، جمعش بشه اکاسره قیصرم جمعش قیاسره عکاسره و قیاسره یعنی پادشاهان دنیای قدیم کلش. با خوش با. از که صاف این سرخون جمعه ترگیانیز گرفتی به که خوشخاف بیا و وقت تحریز هست باید که تقریبا همه جاهایی که حافظ محتصب به کار نبره اشاره به مبارز محمد مزمد تقریبا همج. حتی اگر فرصت بود و این کتاب رو نگاه کردم که چند بار کلمه محتصب به کار رفته و جاهاشون می دیدم که خیلی هم چند بارشون میگن ولی همهشون نمی الان اینجا بخونم و بگم ولی گمام میکنم که تمامش چیست؟ تمامش اشارهی به مبارز الدین محمد مزهری است بیشترین, بیشترین دوره حیاتش رو حافظ و حیاتش شاعرانش رو در دوره مبارز الدین گذارد ولی یک بار اسم این آدم رو مطلقا نیابرد ارز کنم که 16 بار محتسب آمده و گوام می‌کنم که همه جاها اشاره است به مبارزه‌دین برای اینکه او لقب به مزخرگی لغب محتسب محتسب یعنی بازرس شرعی بازرسی که کارش ارز کنم که رسیدگی به اجرای قوانین شرعه و یک کتابی هست که ترجمه شده کتاب عطل عربیش هست، معالم الغربه، فی احکام الهسبه، معالم الغربه، فی احکام الهسبه به تمام جزئیات وظائف مکسبه و این کتاب فارسی ترجمه شده، به نظرم تحت عنوان آین شهرداری یه همچی یعنی اسم این خیلی جالب یعنی تصور نفرمایید که متصف فقط کارش این موده که اینکه شرام پرده برایش علاقش این دسته تا مزخر بازی که حالا میگینید هست محتسب موظف بوده که صد معبر نکنن محتسب موظف بوده که کم نفروشن محتسب موظف بوده که سنگای کاسبا رو وضع کنه ببینه که اینا سنگاشون کم نباشه و هزار کار تغلب در مواد غذایی نکنن چه نکنن چه نکنن بسیاری بسیاری از مسائل اجتماعی. اون روزگاه و بسیاری از حواظیزی که در اون دوران جریان داشته در این کتاب معالمون گروه به تقلبایی که در مواد غذایی می کنند این خیلی عجیبه من اینه برای بگم شاید جالب باشه براتون یه روز دکتر راجی خدا بیانش وزیر بهداری بود آمد تو مجلس سنای نطقی کرد درباره باره که در باره در مواد غذایی میکنه. کنند پروشنده مواد قصد زنده اینا گفت که یکی از تقلبها تقلب در زعفران زعفران چیز گرونیه هر یه امسخالشو که تقلبی درست کنن میگم 20 توان 30 توانگیر که پولی بوده اون روز. میگه تقلب در زعفران به این ترتیب است که گوشت رون گاب رو میگیرن میپذن می، و این رو میبورن منظری تارهای زعفران بعد ریز ریز، ریش, ریش دیگه خیلی این ریش ریشه ها رو می‌کنم در آب زعفران رنگش می‌کنم، می‌ذارم خوش این می اینو قاطعی زرفنانی هم از اون تارای زرفنان سنگین‌تره هم وقتی که به خوب صابیده میشه هم وزنش سنگه، هم می‌شه ایو، لتی نزی یعنی مصمون کننده اونا نیست پولی هم آید صاحبش این جز تقلب و این مهم نیست هزار تو تعلق کنه چنکی مهم این است که در شعر خاقانی متوخف به سال قبل از 600 هاواخر قرن ششم میخونیم که هر جا که نوگلی است خصمی هم حریف اوست است آری به گوش و گاپ بار زعفران یعنی در دوره این تقلب به اندازه شهرت که به گوش خواهانی و وارد شعر شده نه که اون روز درست شده باشه از کی این میکردن من نمیدون و اون وقت مقادیر زیادی از این تقلبات رو تو این موالمون گربه بنابراین توجه رو که دنبال کار محتسب بودن همچنین خیلی چیز نفرت انگیزی نیست که خیار کنیم که من محتسب چطور ترکیب که نه. یک، بعد هم تیرهای جانسوزی که روانه کرده حافظ به قلب این محتسب خیلی خیلی جالبه، یکیش همینه به بانگ چهنگ مخور به که محتسب تیز است یه جا میگه حدیث حافظ و ساغر که میزند به چه جای محتسب و اونها که میدونن چه جای محتسب و شعنه؟ پادشه دانست. یا یه چه دیگه میگه که دیریست پادچاه ها که از می توییست جامن دیریست پادچاه ها که از می توییست جامن این بنده دعوی و از محتسب گواهی که اون گواهی بده که من جامم کن و از این قبیل فرابون داره و یکی از اشاره های کاملش که پیداست اون خفقان و اختناق مبارض دینام که همین قسم عرض کنم که اگرچه باده فره بخش و گل بیزه است بهار بود ظاهرن سراهی گفتم اون تنگ گردنباری که قبلا گفتم مرقق یعنی وصله دار یعنی تیکه تیکه یعنی پاره و اگر کاغذ رو میگن روحه یعنی تیکه پاره کاغذ برای شکست نفسی میگن روحهی خدمت کنه از گردم یعنی پاره کاغذ و مرقق یعنی, یعنی وصله دار در آسلی مورد قبطی، حاله پنهان کن، روشنه که همچه چشم سراهی سراهی، یک دیگه از نام هم طب کرد که همچه چشم سراهی زمان خون ریزه شراب قرمز روش بوده بنابراین اون چه میریزه سرش هم گردگرد گرد نبوده میدونی که یه نیش داشته که از اونجا شراب میریزه دیدید که بعضی از این سانگی سرش یه زایده ای داره مثل اینکه راحت برا این از که درست شکل چشم میشه که همچون چشم سراهی زمانه خون ریزی زرنگ ب... ببینید حالا مثلا 20 سال سی سال بنده خوندم زرنگ باده بشویم خرقه ها از می خب زرنگ باده بشویم رنگ باده همون میه دیگه میه دی بیرفته اونجا و توجه نکردیم تا وقتی که معروم خانلری اینجا بگوید که از یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و و ده تا نسخه که داره دو تاش فقط پس زرنگ باده بشون این خرقه ها از می. 8 و نسخه قدیم معتوردی داره رنگ باده بشون این خرقه ها در عشق یعنی با آب چشم رنگ باده از خرقه هاون بشون این چقدر فسیدتر و زیباتره ولی آدم به عقلش نمیرسد. بس این شعر حافظ خوبه. همینجون می خوندیم زرنگ بادی بهشون این خربه ها از می گفتیم, باز میگفتیم باز و عقلمون نمیرسه آقا ببین از عقلم نیست از تجربمه. عقلمون نمیرسه. بعد که این نگاه می‌کنون زرنگ بادی بهشون این خربه ها در عشق که مقسم ورع و روزگار پرهیز است، سدهر برشده. شده، چه بلند پرویزن است پرویزن یعنی قربال یعنی علک پرویزن است خون افشان این پرویزن با اون پرویز تجنیس ناقصه بر شده پرویزن است خون افشان که ریزش سر کسرا و تاج پریز چیزی که قربال زیر میاد بیرون سر کسرا و تاج پریز. البته ممکنه بخونن سپهر برشده پرویزن است ولی برشده را صفت پرویزن بذاریم به خوبی این که برشده را صفت سپهر بیدیریم نیست سپهر است در حقیقت برشده است به نظر من خیلی بهتره بکنیم سپهره برشده پرویزن است اون هفشان که ریزای سر کسرا و تاج پرویز است مجروی ای خوش ایش خوش از دو باوش بود سپه سپهر سپهر را به صورتی کوره که طرف توش به طرف ماست یعنی این پوری بنابراین دور بود. که صاف این سرخم صاف سرخم رو من توضیح مفصل دادم که می لهل هست و عقیق هست و صاف هست و دردی هست میگه صاف این سرخم دور دالوزه تا دا، تا دا باقیش صاف این سرخم جمله دردیامیز است و پارسی رفتید چیز نشد کنم که این غذا بسیار زیوه رندانه درجی یک به کدوم شجاپورتو بکنه دل با تو گفتنم دل با خبر که قصه از رقیبان نهفتنن خبستن شب قبری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خبتنن خبستن وحک دردامه چنین نازوک در شب تا سفتنن خبستن ای سبا امشب مدف فرما که سهرگه شکفتنن خبستن از براک شرف کنون مژه، موجه خاک راقه تو رفتن هم تا بسرست حافظ به رقمود که ایون شعر انداره گفتن هم تا کنم که رقیب گفتم، من این مراقب کسی که معشوق رو مواظبه که کسی سوقخستی، ارز کنم نظر بدی نسبت معشوق نداشته بوشی بعد میگوید که تمه خام بین که قصه از رقیبان نهفتن هم هست یکی دومی که دردانه دور به معنی مرباری و دردانه یعنی دانه مرباری و کار بسیار بسیار دشواری بوده از سراخ کردن مرباری این رو با علماس سراخ میکردم و این سورا مرباری تو اگر به اندوزه یک صدام درجه این از محور اصلی کربی این منحرف می شده این مرایب یه طرفش کمتر می شد یه طرفش بزاییتر، این طرام می شد تو گردنبند می شدید که نگاه میکرد میکرد بنابراین فوق العاده کار دشواری بوده و اصلا کیه مردای کارشناس جرعت این کار رو این کار جوون باید میکرده که دل و جرعت داشته باشه واقعا دلش رو به درگی و که دردانه حالا حالا برای اینکه این, این دور رو خوب چیز کنه، اون، اون، اون محتشون که علماس بوده بعد در کمال قطعه‌ای مواظبت میکردن که یه وقت منحرف نشه خورد، خورد اینو سوراخ می‌کردند در هر لحظه با ذره بین‌های قوی نگاه می‌کردند که مبادا این یک سر سوزن منحرف شود برای اینکه اگه که سوراخ شود مثلا مروارید از قیمت می‌افتید یعنی مرواریدی که مثلا 10000 تومان می‌ارزه اگه درست سوراخ نشود قیمتش می‌شد 50000 تومان اگه بعد سوراخ شود قیمتش می‌شد 100 تومان یه یعنی وقتی از این می‌رفت این است که در در روشنایی بسیار با ذرهبینای قوی با مته الماس اینا با کوشش بسیار و تازه عرض کردم پیرا جرأت نمی‌کردن چون پهنای کار و خطر کارو می‌دونستان و متوجه ضرری که دلش رو درید ما می‌گه که وح چه چنین نازک در شب تار سسترم havas این دنباله همون تمه خام. عرض کنم که دیگه چیزی نداره جز مطلب رند. که این رند را امیدوارم خداوند را توفیق بده و یه روزی گفتاری. یعنی مثلا، عربا کلمه رند پیش از حافظ، که مثلا در دوره به هقی اینا، یعنی آدم این بیسر را با اینا رو می‌گفتن رند میگه مشتی رند واسیم دادن که بیان به حسن که وزیر سنگ بزنه این آرزو اوباش آبوش کیه حافظ یه مجموعه بسیار جدید تازه میده به رند که مساق اصلیش خودش بود یا آدم دنیا دیده رند عالم سوز را با مصلحت فرصت شمار طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کست آشکاره نیست آشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آرازد و نظاهر این ای دل طریق رندی از محتسبی از اون تیرهای جانسوز ای دل طریق رندی از محتسبی آموز مست از تو در حل او کس این گمان ندا رند و حافظی مخموم دیگه میده همچه حافظ به رقم مدعیان یعنی مدعیان نمیتونه میتونه این حافظ به رقم مدعیان شعر رنده آونه گفتن هم حوض طب... خب ارز کنم که آقای غفاری بخون بستان زوبخش و بستان زوب. و صحبت یاران گل خوش وقت می وقت گل خوش, با. خوش با. از سبا هر جان ما خوش می شود آقای آقای تیب یک گل گل ده ده گل کن بل گل به با در که گل گفتم چندین بار گوی آبه گل سرخ در حقیقت گل سرخ همسانی گل محمدی گلیست که ازش گلاب بگیر رنگ صورتی داره خار بسیار ساقه بسیار خلفت در تمام حاشیه کبیر هم. در میاد از کاشان اون نواهی بگیر تا حاشیه کبیر خوراسون و فارس و همه این جاها پنج تا پر داره او عطر بسیار پشت به دلیل اینکه کم آبه آب بعد از اعماق زمین بهمه که هوا هم که این عطرش تا کیلومترها پرا کرده میشه بوش و کل دوران زندگی این گل بیش از سه هفته یعنی از روزی که اولین گونچهش باز میشه تا روزی که آخرین گلش آخرین پراشه میرزه بیش از سه هفته و به همین دلیل همیشه در فارسی گفتن که گل باشی ولی عمر گل نداشت باشی گل در عوستایی هست وره تر وره همونه که در عربی شده ورد یعنی گل سرخ در عربی سون گل سرخ هستم ندارم که اسمش داشته باشه اسم از فارسی میاد. ورد اما بار چجوری شده گل، بار اینه چجوری شده گل. و, و گه در فارسی و تمام زبان‌های هند اروپایی با هم قابل مبادله، قابل تعویض. در انگلیسی میگیم وار به جنگ، در فرانسه میگید گه یعنی جنگ. در انگلیسی میگیم ویلیام، اسم ویلیام در فرانسه است گیون. در فرانسه میگین در انگلیسی میگیم وار یعنی در پارسی میگیم گر. یعنی میگیم ور، یعنی کر در فارسی میگیم کر، به و, و گه در در دار اوستای میگیم وستر. در پارسی میشه گستردان. در اوستای میگیم وناس. در فارسی میشه گناه و, و گه به هم مادر در زبان های باستانی اوستایی و فارسی باستان حرف لام وجود داره، حرف ر لام به جای به جای لام فعلی در فارسی و زبان های دیگه در اون راه حرف ر است بنابراین ره تا بهش میشه گ رشم میشه لام بعد دیدید که تمام وی های با ا تبدیل میشه به گیای مزمون وی ناست میشه گناه ویستر میشه گستردن مثلا اینا این وره تا وش به گیای مزمون وش هم بلا میشه گل حالا میدید اون تش خوجه دارد وره تا ما قسمت ته اون زونه که برای صرف اسامی چون زبانهای عوضتهای فارسی هستن فوق الان زبانه مشکلیه اون تش اسامی تغییر میکنه این طب کلی هست کنیم در چیز حالا که در زبان فارسی نو اسم آخرش سرف ممیشه اصلا تغییر میکنه خلاب این وره تعزیه طرف شده گل و از طرف صورت صحیحش در زبان عربی مونده ورد یعنی گل صور برها، ورد، بر. در فارس. در و در, و در تمام دیوان های قبل از این نام هر جا گل میاد وانی گل سرد وانی گل گلاب و در کلمه گلاب هنوز هم در فارسی ما گلاب عرق مثلا یاس رو گلاب عرق بیدمش رو گلاب عرق نسترن یا باهارنارش رو نمیتون گلاب دار فقط عرق گل محمدی رو میدیم گلا بنابراین گل به معنی اصلیش هنوز هم در فارسی باقی مونده ولی باقی گلا رو اسمش رو داشتیم گل ولی بپرسید که پس این باقی گلا اسمشون چی بوده؟ جواب این است که اسم اون واقعی دیگه همون اسم خودش بوده خیری، ختمی، نیلوفر، بستان، افروز، سوسن، بنافشه، سنگول، نسریب اینا اسمشون بوده و اسم آن برای همین ها نمیدیم که حالا معنی همه اینا گرفته شده این نبوده حافظ صعدی هر جا میگن گل همینه گلستونو میگه که شب را به بستان با یکی از دوستان اومدیم و گل چی؟ گل چیدو رفت و گفتم که گل بستان وفایی نداره و هنگ پنگوز ششه و گفت چی ها کنم گفتم میتونم گلستان چیز کنم و دامن گل بریخ و در دامن رو چه, چه و چه و میگه که فصلی همون روز اتفاق گل سر نیگه یه بابشو همون روز نوشتن باب هشتون و هنوز از گل بستان بقیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد حد 15 گلستان تمام شد گل محمدی از زمان اصلاح بود... ما ما سرموم شدیم گفتیم این عرق پیغمبر چه دلیلش نیموندی که برش خوب بود؟ ما هرچی خوب بوده خوب پیغمبر نسبت نیم همه چی بود؟ عرض کنم که دیگه اینجا چیزی نداره جز آخرش میگه در این دیر کوهن کار باران خوشه. که این مطلب است که هر که بامش پیش برفش بیشتر پشترش هم بیکن مواظب باش احوال جهانداران خیلی خوش نیست از راه مرین خیلی یواز جلو میگیم خیلی وضع کنم آقای صداقتخر بخون بینم پنون که بر کف گل پنون که بر کف گل جام باده صافه است به صد هزار زبان بلگلش داره زبان؟ به صد هزار زبان بلبلش در اصاف هست بخواه دختر اشعار و راه صحراگی چه وقت مدرسه و وقت کشف کشاف است فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد فتوا که می حرام ولی به زمار اوباف هست به درد به درد و صاف به و صاف تو را هوب نیست خوش در کشم خوش در کرد اینی ساکر کشم که همچه ساگی ما کرد این التاف هست ببرز خلق و ببرز خلق ببرز خلق و چو انگاه پیاس کار بگیر که سیت گوش سیت نشینان زقاق تا است. و خیال همکاران همان حکایت زرد و درد. زردوز و زردوز و گوریا خموش حافظ و این نقطه های مقتهای. مقتهای. چون مقتهای. چون سر نگاه تا که سر راه ارز کنم که می‌بینید که دختر داشت کن باید شیست سفینه غذر کشف کششاخ کششاخ اسمی تفسیر ایست مال زمخشری الله زمخشری جارالله اوش بخنید همسایه خدا به دلیل اینکه مدت ها در خانه گربه مجافه علام جارالله زمخشد زمخشد هم اسمه شهر سرفانه است این کشاف نوشته بود در تفسیر قرآن و میدونی که قرآن از جهات مختلف میشه تفسیر که یکی از جهت فلسفی، یکی از جهت ارخانی، یکی از جهت دیگه کشاف از جهت فصاحت و بلاقت یعنی نمونه های فصاحت و بلاقت قرآن بود اما کشف کشاف کتاب سنام الکش ان مشکلات کشاب تفسیری که کشاب مش... مشکلات دشواری داشت. های داشته که در این کتاب کشکشاب اون دشواری ها رو حل کرده من اینجا یادم را بهتون بگم اكيداً بهتون توصیه می کنم قبل از هر کاری دیگه این مقدمه مرون غزلی رو به, به حافظش بدید مقدار یک دریا اطلاعات درجه یک تو این مقدمه هست با متاسفانه ما این روی عادت که مثلا مقدمه رو بخونیم من یاد به تو مثلا ادبیات رو تحصیل میکردم بچه ها از درسوندن بگونتم خب این اول دوستان نیم پرسیم ۱۰ آخرشون آخر که نیم پرسیم این با این درست نیست بلاخره این معلف مقدمه لازم که دید که نمی نوشت قذبینی برداشته مدار سوی از جمله از جمله این که میگه که حافظ تا این اواخر تا پنجه شهست سال پیش تونسد چیسته تا تونسد بیشتر منصوب با حافظ نبود یه دفعه در زفعه دویست سال این تعداد شد 800 نه بعد آماده داد بعد نسخه ها رو گفته 1000 مطلب درجه یک اون تو گفته و همون هواشی که نرشت را جوی کشف کشاب و هم مشکلات کشاب که توضیح داده که این کجا هست، چی چی هست، مال کیه، معلفش کیه، چی چیه اینا همه در حوشی نسخه معنوم غذرینی هست و خواهش بکنم حتما این مطالب و با اون مقدمی معنوم غذرینی رو بخونیم و خیلی ازش بهره خواهیم چه جای مدرسه او بحث میگه وقتی که وقت دفتر چه منظم کرده است که یه خورده شما در سر پیدا می‌کنیم ما هم به هر کدوم از اینا بخونیم اونای دیگه باز فرق این است ای که ولی شما یه کده گرفته دارید <تصفح> نه، نه، پلو یک گرفقه‌ها که اینو درست چیزشون به ببرزه خلق بزه انقا قیاسه کار انقا که بهش میگن انقای مغرفت رو یاد کن باشه یاد انقای نه مغرف. انقای مغرفت معادل است که ما در عدب پارسی میشونیم سی مرگ مرگ است به وجود خارجی نداره و در نتیجه میگه که خود انقا موگردت اگه می‌خواید شهرت کامل پیدا کنید مثل انقا از کل خب بگرش که سیت گوشی، سیت چشم سیت یعنی شهرت و از قف تا قاف این رسم که یعنی از این سر دنیا تا اون سر. <تصفيق> یه اصطلاح دیگر هم داره دربی ترین شهر در دیار اسلام و اون زگار شهر داننا ایرببان، بیربان در ماکش تلی در کرامه اواقیانوس د بوده و فکر می کرد آخرینرس و از آ بر در شعر فارسی وقتی می‌خوان بگن اینکس شهرت زیاده میگن از غیربان تا غیربان شهرتش یعنی از این سر دنیا تا بری برگردی مکتری کنن قاف تا قاف هم همینطور است ورزه خلوزه انقاق یا کار بگیر که سیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است کنم که یعنی خودش رو در غربت فرو برنده نه خیلی، اون، اون سمندر اونم هم همون بقیه مدرسه که چیزی نیست، به درد و صافت را خوک نیست اونم چیزی نیست، حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریاباف هست، اشاره به شعر است. میگه بود در گلستان میفرماید بوریاباف، اگرچه باخنده است نبرندش به کارگاه حریر در در افثانه‌های عوام هم مرسوم بود در دوره‌ی بچگی ما که گفتن که یه روز پادشاه خیاتا رو خبر کرده بود کل پزم راختازم پالون دوز رو این‌ها رو خیال نکنم کل اون‌ها علی وقتی هست من یا پینه دوز این‌ها کل پزم راختازم راختازم گفتن نمی‌دونم توپی می‌دونم چی یا نه حالا آره باید برای تو می‌کنم گفتن خب اینا اومدن پیروت اومده نمون فارسی اومده نمون اومده من که تو چرا اومدی بهون اومدن برای توپی قیمه میزاصن تو کیه گورات هست یه تیکه سیرابی مثلا انگار تیکه سیرابی میارن تو شما بگی لا تو اورنجو سبزیو میشینش میریفن این در شدی گفتن می تو یه کلفا چی و این رو تو این مواد میپخت و سو کلفا زنم گرد گرد گرد من در بحث می‌زنم اون توپی. به نظر من چه شد؟ اینا رو درشو میدون. گفتم بنده اهل وخیمم در توپی رو میزنم. حالا <تصفيق> حکایت سعدوز دیوریا باد همین طور. عرض کنم که خاموش حافظ و این نقطه هاشون زر سرخ. سر سرخ چیا؟ سر سر دیگه. زر سرخ زر تلاس و فلزی هر برای که محکم بشه، یه فلز گیاهی اگر مست بزنم رنگش بیره ته میشوه، این مثلا ده درستان که مست بزنن اونجور تلای نوارت و اگر اون ده درستان میگنن باید اگر بار تلا مست باشه زر صورت. اگر بار طلا نغره باشه زر سفیدتر میشه بهش میگن زر زر و زر سفید به تناسیب باری که بهش میزنم ظاهرم زر سفید از نظر منظر ارزش بارم که ایارش هرچی باشه قیمت قیمت زر بار ارزشی نداره ولی ذر جلو و بیشتر بوده این است که بیشتر در, در در شعر و عدب اینا از زیبایی ذر اسم و عنوان بیشتری داره تا ذر سطر یکه خموش حافظ و این نقطه هایی چون زرسر سرق نگاه شهر پر راه یعنی کسی که سکه قلب بزنه ولی این کلمه در عربی به صورت قلاب هم هست یادتون باشید من در فرحه میگاه کردم بنابراین گلابی که میگن که پلان چیز گلابیه همون یعنی کسی که قلب زنه و قلب زده هست اما بهتر از که در عدب همون قلاب بخونید برای این که اون گلاب اسم عوامانه است که مصطبع شد خب آقای گرامی بخونید در این زمانه کاری از است، سراحی مگ ناب و سفینه قدل است جریده رو که گزرگاه آفیت تنگ است پیالگی که عمر عزیز بی بدل است اون جریده رو رو هم بعدش هنجور که پیالگی رو یک چند محکس کردیم اونجا جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است پیالگی که عمر عزیز بی نمند زی بیعملی در جهان مل و لم و بست ملالت علما هم زی علم بیعمل است به بی چشم عقل در امره بزار پر آشون جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است بی ثبات بی ثبات و به دیر طره محچه ریی و قصه محل که سعد و نقص به تقصیل زبره و زهل است که خوان که سعد و نه است تأثیر زبجه و زوحل هست یعنی اقوه مزخرم بلکن سمخان که سعد و نه است تأثیر زبجه و زوحل هست درم امید فراغان به وصل روی تو دارد ولی اجل بره اون رخزن عمل است. ولی اجل بره اون رخزن عمل است. به هیچ دور نخواهم یا خوشگاهش که حافظ ما رفت به باورده عزب از کنم که جریده یعنی تنها مجرد که معروف کسی زن نداری می مجرد این تنها زمین جریده این جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است در راه تنگ دو نفر قلوه هم نمیتونم برم یه نفری باید برم جریده رو که گذرگاه آفیت یعنی تندرستی، تنگ پیاله گیر، تا عمر عزیز بیودل است عمل، نه منظه عملی در جهان ملوک را عمل کردن علم، علم علم عمل از این حرفا بسیار شد ولی چیزی که نشنیدید عمل به معنی شغل دولتی است یکی از معانی عمل، شغل دورتی است و کارمند دولت با قدیم روستن آمه که یکی،, یکی از وزرها معزول شد و سهدی میگه در گل سونش. یکی از وزرها معضول شد و به حلقه دربیشان در آمد و از برکت و یمن صحبت ایشان دربه اثر کرد و جمعیت خاطرش دست بار دیگر پادشاه بر اون دل خوش کرد بار دیگر پادشاه بر اون دل خوش کرد و عمل فرمود. یعنی دستور داد که بیا سر کار قبولش نیامد و گفت معزودی بهک ملیقی آنان که به کنج آفیت بنشستند از, از دست خود از دست نموشی و زبان مردم رستند کاغذ بداریدن دو قلم بشکستند و از دست و زهان آنان که به کنج آفیت پنچستن. دندان خود و دهان مردم بستند کاغذ بداریدن دو قلم بشکستند و از دست و زبان هر کیران رستند عمل، عمل فرمون یعنی دستون رو بیسری خواهد عمل شبر دولت حافظ ظاهرم حقوق دولتی هم داشت. اینجا اشاره‌ای در ذهن می‌کنه نه بیعملی در جهان مل لواظ یعنی شغل ندارن در ذهن اون متاد یعنی اون حرفا همه درستا. ملالته علما هم در علم بی عمل است. اصل معنی همون است که در نظر اول به نظرتون میاد. ولی اینجا ظاهرا چون حافظ با شیش جا یعنی با یتیر نه دو نشون که نشون رو میزده در ممزه عملی در جهان ملولم و بس ظاهرن اشاره به قرآنه بیکاریانش هم احیاناً میکنه بعد ارز کنم که بگیر طره محچهره یو قسمخان اینو اگه دو جور بخونه اصلا دو معنی دیگه میده یکی بگیر چشم یکی بگیر طره محچهره یو قسمخان که سعد نهز تاثیر نهز زهره و زحل است. یعنی اینه بگیر که اون اثر اونه یکی هم درست به عکس اینه میگه بگیر چهره، طره محچهره یا قصه من خوان که سعد تاثیر زهره و زحل هست یعنی بشین کار تو بکن اونها اونا مثل تو بدبختن، اون والا دارن واسه خود کار تو چی این بس دیگه پاسخی به این داره که کدومو دلت تو میخواد بخونه یا کدوم تو میخواد عقیده داشته باشی. عرض کنم بفرمایید. از دیگه اولا هم که داریم اونهای تعذ عمل جمع عامله از. عمل جمع عامله ان، چه طلبه جمع طلبه؟ نه نه، عامل یعنی کارکن دیگه اینجا اون معنی اصطلاحی دولت دولت کار دولتی نیست، نه خیر. عمل جمع عامله ولی در دوره مثلا ناصر دین شاینا عمله این معنی پجورتیف رو نداشته به, به نوازندگان دربار بار موطن عمله طرف و به پیش خدمتهای خلوت شاه که همه رجال بودن و عیان بودن و اینا خدمت بودارشان موطن عمله خلوت بنابراین عمله به این معنی که حالا به کار بریم نبوده اما بعد در زمین اینو بگم که کارهایی که موقعیت اجتماعی خیلی قشنگی نداره سعی کنم اسمای قشنگش دید مرمون پوردابود سر کلاس مفرمود رو ما که در یمن به هممال میگم فقیه فقیه یعنی دانشمن فرمود و هممال در یمن میگم فقیه برای اینکه اسم چیزی سفوره رو و رو اولا سفور خودش تحریف شده کلمه کلمه سویپره جارو کرد چون معنی جاروکش همین می‌فهمیدن، زشت بوده گفتن سپور برای اینکه نفهم نفهمم <تصفيق> یکی بهشون گفتن احتساب احتساب و مختصف یعنی بازرست بهشون گفتم جاروکش بوده برای اینکه موقعیت چیزی بعد عمله هم, هم همینطور روز اول تو این گفتن عامل و عمله یعنی، یعنی یعنی کارکن یعنی کارمند برای اینکه خب کارش که پس دلاغل یه اسم قشنگ می‌گذارن روش تلیمه‌ی کنیز هم همینطوره کنیز درست به معنی معدوازیل فرانسیس و به معنی دختر نوبلو به دمه بعد دوشیزه که حالا برای دختران نوبلو خانم برم دف... به معنی دختر قردزاله که در دوشیدن شیر به مادرش کمک می‌کنه و کنیز به معنی خانم اون دختر جوانی که وقتش وریشه بهش میگفتن کنیز بعد گزارشاتم اسدی شاهزاده خانمی که از شهر فیزنه میگه می حمیدون به کاخ اندر استان کنیز یعنی اون خانم در کاه. بعد برای اینکه زنای زرخرید و که طبعا دل شکسته بودن طبعا ناراحت بودن از اینکه مثل خر تو میدون به معرض خرید و فروش میذارنشون اسم قشنگی بهشون بدن که لاقل دلشون به اسمشون خوش باشه اسمشون روشتن کنیز بعد کنیز کم کم معنی اولشو از دست داده و معنی از زن زرتریت خوش کرده تریاک همینجور تریاک یعنی تریاق یعنی زده زر. اسم اون ماده عدیون ولی شون افیون خاری و افیون گرفتن و استعمال افیون خوبه اجتماعی داشته بابایی که میویده میخریده میبوده آقا تریاک داری؟ یعنی زد و زهر داری؟ کم کم اسم اصلی افیون فراموش شده این ماده شده تریاک و حالا که تریاک درست مدنی افتون مکار میره میان میگن جنس داری؟ باید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خاتون خانم بات بعد. شوخی ده زبونه زبونه چون اونام به کنیز معنی صحیحش نه معنی صحیحش. با. اوزه گالنده و اون ده بله یه چوبیام هستی به بغل مرده میذارن اونام یام جریدته اینا به جای خود. ولی اصلا جرید و جریده تنها بعد معنی اهل لغتی برای یه معنی بکنی وز میشه نون برای اون خوراکی وز میشه ولی بعد به معنی درآمد و معنی نمچه و چه و از این حرفا میاد نون ای این ها معنی های مجازی بعد ها دور اون معنی اصلی حلقه میزنید ولی چی؟ غمام میکنم من حالا راجع میکرم. اون تعبیر نکردم چرا روزنامه رو میگن جریده شاید اون معنی یکتا و تنها و. یعنی یگانه و از این یا معنی تک شماره است در صورت به معنی تنهای با اون معنی ارتباط داره حالا واج ارتباطش چیه نه, نه. اجازه بفرمایید که ببینم دیگه چیکار دیگه ندارم بله در این غزل هم باز ملاحظه فرمید که چنین که حافظ ما مست بازی عزل است. غزل بعدی بالسام خوش. کاش در بر در ما در مظهب ما باقی خلاب است دلیکن بید روی فرید سر به بلند آن حرام در قول نی گردش جا در ما عطمی آنیست که ما را تر لحظه خوش بود از شاوش میتغم نتو گیر چوز شکت زن رو که مراو از لب از همیار است که مراو نن زنان این دو اون دو بومی براشد کنید از ننگ چی... از چه از نا... از ننگ که مرا نام زن ننگ و از نام چه پرسی که مرا ننگ نام و بسن نظر که از کوچما مستاب نشا واو در طلب یک آرز کنم که این، این این این قدرت مانند، قدرت کوپن. آرز کنم که. نه، من به دوستان گفتم که فصلا رو مطالعه کنن و شما مطالعه نکردید ببینید خوب خوندیین، خوب شدید. مرحوم علی اصغر خان حکیمت یه روزی بند خودم حاضر بودم برای مجلس سخنرانی و گفت من از روح قدسی خاجه حافظ مدد میگیرم و میخوام تاریخ سروده شدن یکی از غزلای خاجر رو تعیین همین غزل خوند و بر اساس مقطع غزل حافظ منش این بینه و عشوغ زمانی کلیام گل و یاسمن و اید سیام هست گفت که تر غزل این بودی اید سیام اید پتر اول شب به اول شبال، هر ستی و ست سال، یک بار می افته یعنی می جرده دو سال، می به ایام نو بعد مثلا، حافظ خواهد که هفتاد سال شکلی باشه مثلا، هشتاد سال نشمونه، هفتاد، افتاد، افتاد، فنگ سال شکلی باشه یه وقت ممکنه که در ده سالی یا 5 سال دیش این اتفاق افتاده باشه بند خودم یادم که بچه بودم، بچه یک که بودم مارم این تو زنستان برد یاد نه و مادرم بردم چه ما گذاشت بیا مرزه در اون شبایی دراز زنستانی با ویزم پرو می‌کنم بگرمم حتماً باید پرو تازه، نه باید عصمی کنم بذارم سهرگرمش کنن، دوست نداشت، می‌کنم و بعد سی و چهار سال بعد یعنی چل سالم، چون بار دوره ماردون. حافظ به همین ترتیب بعد مرموم حکمت چیز کرده بود که حافظ در ۷۷۲ یا ۷۷۱ وفاد کرده و در دوران او ایده سیاه یعنی روز اول بار دو بار مثلا یا سه بار یا دو بار افتاده به ایام نوروز و روزکار گل که گفتن دوسته هفته اصلا مشتری یکیش مثلا در سال سالگی حافظ رو به فرض کن حالا من این روزیاتش باید هم نسیم حافظ نمیتونست شاعر سرشناسی به ترتیب باشه یکی دیگهش هم مثلاً در ۴۵ سالگی سال سالگی حافظ است به مثلاً با بعد هم ارده بنابراین نتیجه گرفته بود که این قزل بین سالهای فلان تا فلان دو سه سال، دو سال، سه سال، سه سال، من این حساب من این مقال پیچه زی صبحانوانی آقای حکمت رو جبان بودم، خودم زیر بودم که حاضر بودم در ملی صبحانوانی و هفت خب اون وقت ما این نبودیم، اصلا من دانشجو دانشون دانشون هم نبودم من دانشون حقوق بودم و در نشون دنبال این حرفون نبودیم اصلا این که من همین فقط یادم، همینقدر که گفتم یادم ها که خودم رفتم و درس این کار رو اینا یه روزی حساب کردم حساب توی یاد نوشتم مرموع حکمت یه روزی چنین گفت و من برطر حساب که مرموع حکمت کرده کردم این وزر بین سالهای پلان تا پلان سروده شده و الان تاریخ به خاطران نیست ولی خیلی هم برای شما مهم نیست فرض کنید که بگم که مثلا 745 مثلاً. ولی به هر حال تعیین این چیز تعیین تاریخ این غزل به این ترتیب از از تاریخ افتادن اید سیاه به ایام گل و یاسمن پیداست یک دوم اینکه گوش همه یاری در این جمع که امشب بر مجلس ما ماه روخ دوست تمام است تمام تو تمام بر ماه ماه تمام میگن یعنی بدر اینجا ماه پر بشم. در این ولی یه معنی دیگه تمام کافیه سعدی میگه که کمان سخت کمان سخت که دادان لطیف بازو را که تیر غمزه تمام است سید آهو را یعنی تیر غمزه برای سید آهو کافی است واسه یه چیزی گردنwand خانوما در وسط گردنwandشون یه کره طلایی مجوفت تو خالی وسط گردنwandشون مینداختن که این سوراخ خراب داشت بود کره و توی این, این گردای خشک گالیه و مشک و انور می‌ریختن و اینو مینداختن گردنشون این غلطغی و قشنگی هم بود خیلی این از یک قدینت بود و از که بوی خوش ازش فییروممت این رو بهش گفتن انبرچه و انبرینانه توی رسه عوامانه میگیرید که مثلا دختر پادشاه وقتی عاشق پسره شه و شاهزاده ساده مثلا نام پلات بعد دای میخواد دخصه که مشغول بشه و تعیباتات کار بمون نام دایقررگ میکنه میگه انورچه ای داشتن و ورد گردا دایا می خب داایی دیگه خفه شد درخور امورچه یا امورینه اون گردن برد. سعدی باز میگه که گیسوت امورینه گردن تمام بود یعنی کافی چون گیسوت خودش بوی خوش داره بنابراین گیسوت امورینه گردن تمام بود و خوب روی چه محتاج ازی برنست بنابراین تمام به معنی کافیست حالا میگه شم در این مدست یکی اینکه ماه رو خدوست مثل برش، کافیه ولی اینجا معنی دفعه میگه دیگه در مجلس ما، ماه رو تمام است، یعنی برای روشنه مجلس، همین ماه رو کافیه به شم احتیاج نیست. ارز کنم که در مثلا معاده همون که هیچی ارز کنم که اون در مجلس ما اتش، ما که ما را هر لحظه خانم خوند اتر و من هی هم که این تلفظ و لحجه ای به این خوبی رو با این چیز آخوندی که این اتر در حقیقت خراب <تصفح> <تصفح> و... نمیده کنم ولی چه کنم بگه در لغت این کلمه اتر و ما به ب... ب... تمایل زبون فارسیم تطبی کردیم به عطر و میگیم ولی سر کلاس عدب باید گفت که این تلفظ تایش اونه عرض کنم که گوشم هم ور و چشم هم, هم ور لعب و خیلی خوب خلانو عرض کنم که قند و شکر به نظر خیلی دیگه محتضل میاد که راجبش حرف بزنم ولی باید اینجا عرض بکنم که قند و شکر در اون روزگار جز لوکس بوده امروز ما یه حاله شروع کردیم نخوردن میگه قند نخوریم قند نمیخوریم پریز میگن ازش اون روز به عنوان ارمقان به اون سوغات از مصر و در قرنش شوم از خوزستان سوقاتی قند میوردن سعدی توی دیباچه بوستانش میگه که در احسای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی چه چه چه بعد برگشتم شیراز تولای مردان این پاک بوم یعنی شیراز برنگیختم خاطر از شام روم به دل گفتم از مصر قند آورن برای دوستان ارمغانی برند. من را اگر تویی باشد از قند دست تو خنه های از قند هست. نه قندی که مردم به صورت خورن که ارباب معنی به ساقص ده قند، دو سه تا میدونه الانم شیرمه های اینجوری به صورت پولکی به قول اسفانی ها نباد، همه همه اینا دو سه تا اصطلاح دیگر هم در قدیم دوشته که تبرزده به معنی نباد یکی فانید یا فانید با نوشت نوشت یکی تبرزده یکی فانید هر دو تبرزد معنی نباته، نمک ترکی رو در شیراز میشون نمک تبرزد نمک, نمک مثل نبات بلیشت فانی دام نوعی از همین غنده که نمیدونم به صورت آب نبات مثلا یا همثال ایناست میگه که ری تبرزد شده سایان اسپاهان این میوردن و همینجوری که از آن هنوز این طول ایکی اسپاهانو هیچ چیلی مرحوم باهار علی عبدالرسولی یه, یه قصیده در مردش میسازه در دوره تحبیقش که وضعش هم و بعد جواب می‌دهدش جواب میده رجبه او میگه که علی عبد الاسوبی بلی چو خواب می گرفت چرا می‌میستد که از فضل آن بزرگ سزیم نمونم لطیف نصری چون شوشه‌ها و یه بدی سرید بدیگ نظمی چون چده‌ها و مرباری بس که در غم ایام یا علی گفتم به روز باز پس اینم علی به داد رسید به راستی علیه، این بلند چامل چه بود که از خلاف سطورش ستاره می‌کنه چه بود، چه؟ بعد یه به ری و فامید از اسفحان شده معمولاً از اسپان به ری تبرزد و خانید می‌آوردن به ری تبرزد و فامید از اسفحان شد و تو به اسپان ز ری و فامید برگزار ها در قسم این تبرزد و خانید و غند و شکر و نبات و شاخ نباته اینا همه مشتقات قنده که در موزگار تمام اینا جز لوکس بوده و جز شیرینی‌های های مثل حالا که شکلات او نادی و عباد ببخش می از محل اولی که بند رو می کسیمند که آبش کفش بله درسته برای مراحل تصاح کاملا صحیح دقیق تر از اونم بخون تو کتابای مصادر طبی مثل تحفه حکیم مؤمن و اینا به دقت بیشتر تمام اینا رو شرح کنم که تا گنج قامت در دل بیرانه مقیم است همواره مرا کنج خرابات مقام است یا مقام است که هر دو درسته اینجا با کلمه خرابات و گنج بازی کرد. برای اینکه معروف هست که گنج معمولاً در بیرانه است. میگه تا گنج هم در دل بیرانه مهم است همواره مرا را خرابات مقام کنج خرابات الان میخاره و سرگشته بود کنج خرابات این نسخه ودلی دیگه اینجا نسخه خانداری. کنج خراباته باقی شاید کوی خراباته علامتون تو نه بیت هفت ارز کنم که پیوسته فقط نسخه غزبینی کوی خراباته یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده نسخه است. فقط نسخه محروم غزبینی کوی خراباته باقیش تمام کنج خرابات. یازده عرض کنم که با معتصبم ای مگوید باز معتصب ظاهرا اشاره مواردی با معتصبم ای مگوید که اون نیست پیوسته شما در طلب عیش مدام است مدام یه معنیش شرابی بود عیش مدام یعنی شرابخوری در ذهن حافظ منش این دونه بسیار عرض کنم که خانم قضایی شما می‌خونی؟ من بهتون میگم من میگم بله به گمای میکده هر سالکی کی که راه دانه خیلی غزلت درجه دیگه کی هست میکده هر سالکی که خیلی درجی میکده هر میکد هر که ره در این زدن اندیشه, طبح. اندیشه طبح. زمانه افسر به کسی بزرد با من این رو درسته می کنم بیا جنا بیا بیا اینجاست wow. از اول به کوی محکده محکده هر سالکی که رهدانه است دری دیگر زدن اندیشه تبع دام نیست اندیشه تبع دام است عجله نمش نکنید ما اصلا عجله ندریم ما این کرافت در می‌گذره هل عجله ندید فرااستانه میخانه هر که می هرکه یافت رهی سفری از جامعه اسرار خانقاه دام است زمانه افسردگی داد جز به کسی جز به کسی که سر فرازیه در این کلا برای طاعت دیوانگان ز ما مطلب که شیخ مظهب ما شیخ مظهب ما... ما... ما آوری گنه دانه هران که راز دالن ز خط ساغرخان رموز جامجم از نقش خاک بخ دانه را کشی به آنطور که دلزیه دانه ز جور کوکب طالع سهرگهان اش من جننگریگز جنوپی دیو ماختار است میزان تن ها چه جای مقتصب و شهنه پادشاه چه جای مقتصب و شهنه پادشاه دان است حدیث حافظ ساواغ که میزان تن ها چه جای مقتصب و شهنه پادشاه دان درست می تون چه جای مقتصب و شهنه پادشه دانست. پادشه دانست بلند مرتبه شاهی بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپه نمونهی ذخمه کاغ بارگفت دانست با. از همه مذیب خان که من هم بذیبت خونم نه خیلی هم خوب خوندین خانو غزل یه خود سخت اولم دو خم این به هر جهت اومدن اینجا که شعر بخونند یاد بگیرند دیگه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 لنگر هم باز مرکز مرکز ها و جوان مردان مثل شبیه خانه‌قا و هم در ترکیه در عثمانی بهش مفتن زاویه باز هم همین مثل خانه‌قا زمانه افسر رندی نداد جز بس. کسی این جز عدات حصره و برای تأکید میاد یه وقت شما به من میگید که نهار چی میخوریم میگم آب بوشت یه وقت به هم میگید نهار چی میخوریم میگم من هیچی نمیخورم جز آب بوشت. این دوتا با هم فرد اولی معنیش این است که اگه آب بوشت حاضر نبود چون 5-6 هم طول میکشه که بپزن میگه آب و داریم یا پلو داریم یا تقمانیم رو داریم اون خب بیار. ولی ای گفتم من نمیخورم مگر آ یا من جز حاضر چیزی نمی‌خورم این تاکید یعنی این چیزی دل نگی میگه زمانه افسر رندی نداد جز به کی جز به کسی که سرفراز عالم در این کلاه کلاه معنی تاج درسته میگم افسر معنی تاج که سرفرازی عالم در این کلاه دونس یعنی در این تاج برای قاعت دیوانگان زمان مطلب که شیخ مذهب ما گفتم برای تون شیخ منی آخون می شیخ یکی اصطلاح صوفیه هست شیخ است پاییندر از پیر پیر در هر سلسله دست یکیست اون یه نفر که پیر سلسله هست موریدانش در ده شهر در صد شهر در پنجاه شهر ممکنه پنجاه تا خانقاتش هر خانقا یه سرپرست می‌دارد سرپرست اون خانقا هر خانقا باشدن شیخ حافظ میفرماید که رفت گران در ای مورید خرابان شادی شیخی که خانقا هم ندارد مرشدی پیری که مورید قبول می‌کنه از اون مورید قبول کردن توشیدن و پیل و پسات و, و, و کار ولی آدم اگه از بگذره شیخی که خانگاه نداره یه قدم به سوی بی نیازی بده میگه ما طاعتمون طاعت میگانه کنم برای که شیخ ما عاقلی رو گناه میدونه است مراد از عقلی که صوفیه همیشه پختش میکنن این عقل کاسبگاهیه این عقل این که حالا این کار بکنه و حالا اینجوری بکنه و حالا این صرف میکنه و صرف نمیکنه و درست در نقطه مقابل عشق گفت می تا اینان شه گیرم کنم از دست خوب رویان داد عقل بوید مرا رو که نتوانی عشق بوید هران چه بادردن. این عقلی که ازش ایراد میگیره حافظ اینه همین عقلی که گفت آزمودم مولانا آزمودم عقل دورندی شاب از این دیوانه سازم توش برای طاعت دیوانگان زمام اطلب که شیخ مذهب ما آقلی گنهدان اون که راز دو آلمز خط ساغر خاند راجع به خط جام، هر دادن مفصل رموز جام و جم از نقش خاند کسی که راز دو عالم از خط ساغر لخونه خاکم نگاه کنه به نظرش این همون حدیث هست که مثل این که گفتم یا ترگیز دارم که گفته باشم یا نگفته باشم و ارحال اگرم گفتم دوباره می دیسم براتون که گفتم ات فهون فراف خیلی آن زور بنور الله تقو فراست المؤمن فانه فا او یعنی زور بنور الله یعنی بفرهیزید از چیز میشه مؤمن برای اینکه مؤمن با نور خدا نگاه هر آن که راز دو آلام ذخات ساقرخان رموز جام جام از نقشه خاک رهدان است راجب جام جمع توضیح دادم گفتم که جام مالکه خسرو بوده گفتم یا نه؟ نه با. در داستان بیژن من بود به دلیل تشابه لفظی شده جامع جمع رموز جام جمع از نقش خاکی ره دانست دلم در نرگست ساقی اما نخواست به جان چرا که به ی آن ترک دلسیه دانست نرگس نرگست که الان می‌بینیم، وسط زرده درسته، یه نوع نرگس هست که وسط سیاه چشم و تشبیه به اون نرگس می‌کنه متاسفانه، الان من بر فرهنگان نگاه نکردم، خیلی مسلط نیستم یه نوع نرگس داریم به, به،, به اسم نرگس شهلا یه نوای گیری منام نرگس مسکین انوای دیگر هم دارین اینو باید تخفیض در فرهنگو نگاه کرد نرگسی که چش روش تخفیض میگران وسطش سیا بوده و گویا اسمش نرگس مسکینه و به هر حال دلم ز نرگس ساغی امان نخواست به جان چرا که شیبه آن ترک دل سیاه. دانست دانز چشم و ترسیه هست، ترک معروف بوده به خونریزی هم معشوب بوده، هم در این حال خونریز و دیره هست یکی از نرگست سابقه، اما نخواستم برای این شیوه اون که دلسیاه رو در دل دلسیاه در این حال که این اشاره به چشم معشوبه که وسطش سیاهه در ضرد دلسیاه به معنی دیره هم و ارز کنم چرا طور که شیوه اون ترک دلسیاه دانه سه جوره، جوره کوکر طالع و چشمم چون خوشان نظر حدیث، و حافظ و ساغر که میزند پنهان چه جاوی محتسب و شهنه پاپچه دانست پاپچه کدومه؟ گوام می‌کنم اشاره به شاه شجاعه و اون محتسب اشاره به مبارزدگی نیست که مرخص شده حالا از قدرت رفته کنار میگه محتسب و شهنه که چی پاپچه هم دانست پاپچه برن مرتبه شاهایی که نهروا و پر نمونه ای زخم اطاق بارگهتانیست فکر میکنم شاها شجا باشه خطور که ارز کردم ولی هفت تا خط، خط سوار آقای شاهابی، این خونه ها از, از شاه قزلی اتفاقا به دفته این از خطور راز ناخوانی جان است گو که یافته سنگال از بازی دانه و بس او سحر و گل مرگ سحر دانه و بس چند گل سحر و که هر کویاری خوان موانی دارد یکی از دفتر عقل آیت اشخاموزی فرسم این نقطه که به تحقیق فرسم نقطه آنی دانه است نکن اون ای کم خطاب ای که از دفتر عقل آیت اشخاموزی فرسم این نقطه به تحقیق ندانی دانه است بقی میبیاورد که ننازد بکنه را به جهان حج خارجگری باد خزانی دانه ارزه کردم زودگاهان بردر کارساده بدون از اشتو باقی همه بامی دانیست سنگوگل را کند از یوم نظر لعل هرکه قدر نفس باد یمانی دانیست آن شد اکنون آن شد اکنون یعنی گذشت نید آن شد اکنون چیز اخصوص عوام اندیشم نیست عیش نهانی نیست در این عیش نهانی دانه است. یعنی محتسب هم خبر شد آن شد اکنون که زد اخصوص عوامندیشم محتسب نیست در این عیش نهانی با است بله دوتا شما ما مسلحت وقت ندید برنه از جانب ما دلنگرانی دانه دلنگرانی دانه است لطفه شاسای شما مسلحت وقت ندیم ورنه از جانب ما دلنگرانی دانه است این دوهر منظوم که از تبهنگی اثر تربیت آسف ثانی داره بله ارز کنم که خیلی مطالب بر داره این رو صوفیت من خیلی به اخصال میمشم صوفیت, صوفیت از پت می راز نهانی دانست قطعاً جاذبه ی حقه راز نهان از بکتونه گوهر هر کس از این لحل توانی دانست اتقو فراختل دارم قدر مجموعه ی گل و مرگ سهر دامانه دوست گل مجموعه است چند برد دو گره هست در زن فرد فردات جمعه مجموعه به معنی کتاب و مجموعه و دفتر به خصوص دفتری که رساله های مختلف در ایش چند هر کدوم از برگ های اون رساله هم ورد مونده برگ گل رو هم ورد مونده قدر مجموعه گل مرگ سهر دارد و بس باز این بس از عذاق هست مثل جوز یعنی فقط مرگ سهره که قدر مجموعه گلونی راست به معنی گل مرق سهر داونه بود که مرغ بقی خان معان جدا هر کی بعد بخونه این در بین اهله قنار و مثلا آواز خونه اونا خیلی رایجه که بابایی که صدای خوش داره بعد میگه دو تا از بس سگاه سگاهونه ها یادت میگیره بعدم میره شروع کردن پول در آوردن و اون استادش بیرونش میکنه میگه خب تو بره دنبال کاسبید برای اینکه این کار زحمت داره خیلی باید بیایی دونه, دونه دونه اینا رو تحریجاش رو یاد بگیر اینا سخته حالا تو میتونی راحت با همین مقار مایه که در حسابوزی اگه میخواه کاسبی کنی اون درمی بری درست همین قطره مچموعیه گلت مرق سهر دانه دو بست که نرکو برگی خان معانی دانه است ای که از دفتر عشق این عقل و عشقی که باز گفتی ای که از دفتر